ترین دختر رو زمینم. اثر رویا هدایتی با صدای الهه پرسون آرمان سلطانزاده کاری از گروه فرهنگی آوانامه با همکاری انتشارات هیلا میشم فکر کنم دارم می اینجا خیلی بوی گ میده اینجا هم میشه بیه میده نمیدونم چرا تموم نمیشه؟ برناممو بگیرم یهو دست شویم گرفت نمیدونم چرا من زیاد خوب نمیخورم مامانم میگه همه کارادیهوییه شل بارمم خیز کردم مونم بازم منو میکوشه من تو دستجویی هم شل بارمو خیز میکنم آخه وقتی اومدم تو این دستشویی در اون محکم بستم ترسیدم حالا دیگه باز نمیشه همین یه دونه تمیز بود تو بقیهشون شون کرده بودن اما آب نریخته بودن من میدونم اینو همش کار آقای مقیسه ایه. اون تو همه دستشویی هم میکنه بعدم آب نمیریسه تا همه بچه ها که میان اینجا مریض بشن بمیرن خودم شنیدم یه بار که داشت اینجا رو میشوز گفت ایشالا همتون از درد و مرز بمیرین را اوی اگه بفهمه به فهمه گفتم دوباره منو میکشه اون هی منو میکشه حوصلم سر رفته من گیلاس خیلی دوست دارم کش یکم از درختمون گیلاس میکندم میریختم تو یه چیزی که الان بخورم خیلی دوست دارم مامانم میگه خاک تو سرت همیشه وقتی گیلاس میکنم از درختمون میگه وقتی شلبارم و خیس میکنمم میگه وقتی هم که بالای لبم و لیست میزنم مزه شوره صدای مامانم داره میاد داد میزنم مامان مامان ازم من اینجام مامانم در دستشیه رو باز میکنه و میبنده من که اونا نیستم داد میزنه پس کدوم گوری هستی ذلیل بشی الهی که منو با این پادردم سرگردون کردی من یهو ذلیل زلیل میشم مامانم در دستشیه رو که من توشگیر کردم و با یه هل باز میکنه دستای مامان من کچولو هست. اما زورشون زیاده خاک تو سرت اینو مامانم میگه یه دونم میزنه پس کلم از دستشویی که دارم میام بیرون شلوارمو که خیس کردم میبینه میگه الهی بیمادر بشی تو دستشویی هم شلوارو تو خیست میکنی مردشور ببرت تیشالا حالا باید تو خونه آبه روت بره بیا گمش بیرون آخ یه دونه محکم میزنه پشتم حیات مدرسه ای ما خیلی گندست من با سوریا که کلاس دومه تو حیات مدرسهمون همیشه چامچام چام بازی میکردیم سریا سال بعد میره سوم منم میرم دوم سریا خنگتر از منه مامانم میگه من ترین دختر رو زمینم اما من میدونم سریا از من تره. خونه ای اونا چسبیده به خونه ما تو کوچه هفتمه. همیشه همیشههم انگشتشو تا ته میکنه دو دماغش من بلد نیستم چند بار خواستم تو تا هم بکنم تو دماغم اما تو ته نمیرفت رفت که نمیدم دم چجوری بلده سر کوچه ما یه شیر فشاری هست یکی از تندونای من افتاده مامانم میگه موش برده سالمش برام بیاره نمیذارم مامانم مامو شونه کنه آخه دردم میاد مامانم آرون بلد نیست محکم شونه میکنه مام گیر کرده به گلوبندم گلوبندمو از شانسی در بردم داریم از جلوی سکوی حیات مدرسمون با مامانم رد میشیم دارم موامو از گلوبندم باز میکنم حالا باید از جلوی در راهروی روی مدرسمونم رد بشیم خانوم سماباتی معلمم جلوی در راهرو رو داره به من نگاه میکنه من از خانوم سماباتی خوشم نمیاد اون از من بدش میاد تو کلاس هی منو عزیز میکرد حالا میخوام براش رو در بیارم اما هم میترسم هم روم نمیشه مامانم به خانم سماباتی سلام میکنه مامانم وایستاده اداره با خانم سماباتی پچ پچ میکنه من دارم کش رو میندازم دور پام از پام در درومده مامانم به پشت دمپایییام کش میبنده تا از پام در نیاد اما بازم میاد مامانم یه چیزی به خانم صماباتی میگه خانم سماباتیم بلند میگه نه دختر خوبیه فقط بعضی وقتا اصلا حواسش تو کلاس نیست یه کمی شیطونه دیگه اینشءللاه تا سال بعد خانومتر میشه توف میکنم روی زمین خانم سماباتی به من نگاه میکنه من با سش میگیرم و رو میکنم اون بر من از این خانم سماباتی اصلا خوشم نمیاد. اون از من بدیش میاد یه بار من تو کلاس یهو هو حبست آش کرده بودم خانم سماباتی داشت جمله سازی درست میداد من خیلی حبس آش کرده بودم گفته بودم خانم ما حبس آش کردیم خان صباتی ک انداخته بود پای تخته اومده بود دست منو محکم گرفته بود و کشونده بود تا دمه در. من انداخته بود بیرون. من فکر کرده بودم شاید میخواد به تو سیاه بعد قلبم هوری ریخته بود پایین. ریخته بود تو شلوارم شلوارم خیست شده بود. خام زده بود تو سرم. آبه توی قلبم شلوارم رو کرده بود. کلم درد گرفته بود وقتی خمسمباباتی زده بود تو سرم. کیری کرده بودم؟ تا حالا سیاهچال چال ندیدم هیچ کدوم از بچه هام ندیدن اما سمیه میگه خان برجی یه بار انداختتش تو سیاهچال، اونجا با یه منگنه بزرگ دستش رو سراخ کردن اما هیچ جای دستش سوراخ نیست فقط خال خالیه سمعیه آخر کلاس میشینه خیلی دیرازه بچه ها میگن اون چخام میکنه مرزیه و, و ستاره میگن میگن سمیه چاخانه خان برجی نازمه ماست. اون روز خیلی حبست آش کرده بودم خانم سما میاد دستشو میکشه روموها میگه خوبی پریجون کارنامه دیدی؟ گیدی؟ نمره همش خوبه اشالا سال بعد بهتر درس میخونی و کمتر شیطونی میکنی میخواستم دستشو گز بگیرم روم نشد ترسیدم. چشم خانم زنگ نقاشی بود خانم سمباتی گفته بود بچه ها دفتراتون رو در بیاری میخوام یه موضوع نقاشی بهتون بدم من دفترم رو در رو برده بودم داشتم یه گرباقه یه روی تاقچه میکشیدم تو خونمون یه گلک گرباقهی دارم رو تاقچه و من خیلی نقاشی کردن و دوست دارم همه چیم بلدم بکشم مامانم میگه هزار مشالا خانم سمباتی گفته بود حالا بچه ها من روی میزم شما هم شروع کنید به کشیدن تصویر من من تشناه قرباقم رنگ میکردم اون یه قرباقی قرمز بود و انگیش رو عوض کردم نستی که زنگ بود خانم به شیرین که میزه افر میشینه گفته بود دفترها رو جمع کنه شیرین همیشه خودشو رو با سمن میگیره ایش فکران خیلی پول دارن همیشه تو مدرسه ساندی بیچ میخوره اما یه بار منو برده بود تو دستشوی مدرسه یه لقمه که مامانش درست کرده بود و داده بود به من گفته بود بیا بخواه گشنگی نمیری. اون از ما بزرگتره شیرین دفتر رو جمع کرده بود شیرین خودشو باسه من گرفته بود من داشتم از گشنگی میمردم. زنگ بعد خانم سماباتی منو تو کلاس را نداده بود وقتی داشتم میرفتم تو کلاس منو هول داده بود بیرون گفته بود پری بیرون باش ببینم. به هم گفته بود فردا با مامان یا بابت میای مدرسه من با مامانم رفته بودم بابا ندارم اون یشب خوابید دیگه پا نشد بابای من دستای خیلی بزرگ و پاهای خیلی گنده داشت اون منو با دستای بزرگش بغل می هی منو می برد هی می برد وش هی منو همه جا می مامانم میگه از پس دروغ میگی و فوش میدی در دهنت سیاه شده تو دهنم همیشه سیاه خشکه اما من وقتی بزرگ بشم با یه مرد خیلی گنده عروسی میکنم که دستایی خیلی بزرگ و پاهای خیلی دراز داشته باشه میمثللی رضا! خانم صمباتی درباره نقاشی من به مامانم گفته بود گفته بود خانم این دخترتون رو باید ببری پیش دکتر روانپزشک مشکل داره این بچه تو دلم خونده بودم مشکل پشکل مشکل پشکل مامانم تو خونه گفته بود یعنی دکتر دیوونه ها یعنی تو یه دختر خلوچلی مامانم گفته بود چرا به جای عکس معلمت قورباغه کشیدی جلوی معلمت اپشانم از خجالت و هی منو بیشگون گرفته بود و گفته بود خاله تو سرت دردم اماده بود من گیلاس چیده بودم گیلاس میخوردم با مامانم داریم از مدرسه میریم بیرون خیلی گرممه تو را آبروم هی میرزه پایین من هی خم میشم از رو زمین جمعش کنم مامانم دستم رو میکشه هی به مامانم میگم مامان از اصد فالوده بخریم مامانم هی نمیخره مامانم همش پول نداره میگه میریم خونه خودم برات پستنین درست میکنم تو همونجا جا بستنی ها که برات از نمکی خریدم ما میرسیم تو کوچ همون من میدوم هم زنگ سرعیان ها رو میسرم تا کارنامه ها بهش نشون بدم تا اگه پفت کامنی خریده باشه باش بخورم مامانم میگه از حیات که صدا کردم بیا مامان حرفمو گوش کن وقتی میگم بیا همون موقع بیا سرعیان رو میبینی؟ تو مامانش صداش میکنه اونم میره باشه مامان میام سریا با پفکش در باز میکنه من پفک ای خیلی دوست دارم دستمو تو ته میکنم تو پاکت انگوشتم پر از پفک ای میکنم تو هر انگشتم یه دونه پفک حلقه ای. من خیلی دوست دارم میگم سلام سریا کارنامهتو گرفتی؟ سریا پاکت پفکش رو میکشه عقب. سورایه هم خنگی هم خصیص خود تو سرش سرایی کارنامهش رو هنوز نگرفته کارنامه از دستم میگیره میگه تو که ممتاز نشدی؟ تازه دیگتر شده پونزه اما من همه این بالای هیچ در میشه میگم گم شو بابا چخان میخوام دستم بکنم تو پاکت پفکش سرایی سر پاکت رو میگیره دیگه نمیذاره بردارم من پنج تا بیشتر نخوردم دستمو مش میکنم محکم میکوبم تو کلی بودی سرایی کلی سر ایو فرو میره تو گردنش سریا دستاشو تو هوا هی تکون میده پاکت پوفکش از دستش میفته زمین مثل مرغ شده سریا انقدر تکون کندکون میده که از زمین بلند میشه میره تو آسمون اما یهو یادم میفته مرغه که نمیتونه پرواز کنه سریا یهو میوته زمین میشه مثل کدو قلقلزن هی قِل میخوره رو زمین من قه قه میخندم سریا ها داره دسته می او میده های چقدر دل بقازی همه بفکمو خوردی حالشم میخندی؟ من همیشه خوراکیامو ها مو با سورایی میخورم مامونم به خوراکی میده میگه برو با سرعیا بخور زمیسونه بار من از انباری طبقه دوم یه پارچی توری پیدا کردم توی یه غلمه آلوهای خوشمزه بود خیلی خوشمزه زیر کمود آبیه بود هر روز اونا رو با همون توری میزاشتم تو کیفم میبردم مدرسه با همین سرعی خپله میخوردیم بعد که میومدم خونه رو میزاشتم سر جاش فرداش دوباره میبردم مدرسه هی میخوردیم و هی میخوردیم یه روز همهش تموم شد با جز 11 تاش مامانم فهمیده بود من یادم رفته بود به خدا یادم رفته بود به قرآن مجید اونا همون آلوایی بودن که پارسال مامانم به از میدون خریده بودن نشسته بودن از صبح تا شب پوست همهشونو کنده بعدم مامانم اون همه رو ریخته بود تو چند تا سبت روشون تور کشیده بود بعدم سبت ها رو گذاشته بود بالا پشت بوم تا خشک بشن اونا تا مدرسه ها باعث بشن رو بالا پشت بوم مونده بودن من یادم رفته بود مامانم گفته بود پریم مامان به خدا کاری ندارم فقط بگو اینا رو تو خورده تموم کردی؟ بعد به سر خاله نگاه کرده بود گفته بود سری جان به خدا میترسم این خونه جن داشته باشه قاسم خور ریخته بود تو سر یعنی خندیده بود اون مامان سوریاس من گفته بودم آره من خوردم بعد دویده بودم تو انباری بالا درو در بسته بودم رفته بودم زیر رخت خوابا به سوریو میگم تو چرخاتو بیار دو نفری سوار بشیم سریا میگه مامانم نمیذره. دو چرخام خرابه سوریو هم خینگی هم خسیسه هم چخونه می‌تون وسط کوچه بلند میخونم سریار خره گا به منه سوایش می‌شم میبره می‌بره تا آدم اسکا می‌بره با پفکش می‌وفه دنبالم من فرار میکنم اون از عقب توف میکنه. رو ما. من من برمی‌گردم توف کنم رو صورتش سریار پشتم نیست من توف میکنم چادر سلطان خانم سلطان خانم یه دونه می‌زنه تو صورتم میگه دختر این نکبت تربیت از وحشی خونه اومده انگار اصری میام در خونه‌ت ببینم این ننت چجوری تربیتت کرده گم ببینم من رو حول میده بر. تو دلم میخونم سلطان قریق و, و من دختره یه نکبت بیتربیت میشم. گلوم درد میکنه. وقتی سلطان خانم زد تو صورت هم گلوم درد گرفت. آخ انگار میه حول گیر کرده تو گلوم. جلوی درهمون رو پاهم میشنم. دستام میزارم میذارم رو سانوم سرمو رو دستام. من گریه میکنم. سریا انقصی شو تو تا کرده تو دماغش منو نکم کنه تو دلم میخونم سریا برو گم شو برو تاکسی سوار شو اگه تاکسی گرونه اتوبوسه گرونه کیو سریا رفته فکر کنم رفته گم بشه خوابم میاد مومنم منو صدا نمیکنه، کنه مومنم هیچ وقت منو صدا نمیکنه، کنه میرم خونه آخ جون ما نهار آش داریم همه جای خونمون بوی آش میده می, می مامانم بغل بغل میکنم اون نشسته گوشه اتاق داره انگششو فرو میکنه تو ورم پاش. پاهای مامانم همیشه ورم داره همیشه درد میکنه مامانم پسی وقت گریه میکنه فکر کنم پاهاش خیلی درد میکنه مامانم رو بو میکنم بوی آش میده می مامانمو می مامونم رو بخورم و می ترشتم. خجالت میکشم مامانمو چند تیکه میکنم میذنم تو یه خیلی گنده دارم همش میزنم موهای مامانم مثل رشته آشه من تون تون مامانمو هم میزنم اون کیف میکنه بعد میرم از کمودابیه یه آلم کاسه میارم تو همه یه خورده از مامانمو میرزم میبرم به همسایی همون نظری میدم میگم نظر امام حسینه مامانم کیف میکنه همسایی چیخ میزنن مامانم گریه میکنه چون اونا ها رو میندازن زمین میشکنن مامانم میگه چون کارنامه‌تو گرفتیم و نمراهات خوب شده واسه آش درست کردم. دستشو میندازه دور کمرم. مومنم منو فخر کرده. میگم مامان، پستنی چی پس؟ میگه باید تا از سب کنی یخ بزنه. من صبر ندارم. هیچ وقت صبر نمیکنم. کمرم درد میکنه. بابامم همه جاش درد میکرد. دمرو خوبم رو پاهای مومنم میگم مامان کمرم مامانم یه داغش رو از ری لباسم میذاره رو کمرم. داره کمرم میماله. کیف میکنم. مامانم چادرشو رو کشیده روش. کشیده رو سرش داره خور و میکنه. من که سب ندارم میرم تو اشپس خونه. در یخچال اونو باز میکنم. جابستنی ها رو برمیدارم. میخوام درش رو باز کنم. خیلی سفته. اونا هنوز یخ نزدن. درشو درش رو یه ها میکنم. این دو تا لیوانم که به هم چسبیدن یه لیوانش رو سرم کشم. اون خالی میشه رو صورتم من که صبر ندارم یخ میزنم همه جا مسه شربت آبلیمو میده. این بستنیا همیشه مزه شربت آبلیمو میدن. مامانم داره صدا میکنه میگه پری اونجا چی کار میکنی؟ اون آشاگه هم بزن زیرش خاموش کن جا بستنیا رو میندازم زیر صرفشویی دارم میرم صورتی رو صدا کنم بیاد آش بخوره مامانم گفته برو بگوم بیاد هر وقت آش دانی اونم میاد. نماش قهرم درشون بازه میرم تو حیاتشون جیب میکشم زری خانوم مامانم میگه به سریا بگیم بیاد آش بخوره سریا داره بودو بودو از پلاشون میاد پایین خود سرش من رو میکنم اون بر مامانم صفر رو پر میکنه من کاسوها رو میارم من خیلی سنگینه به مامانم میگم مامان به سریا بگو بگو قابلومه رو ببره مامانم خودش میبره سر صفره مامانم میگه پری باز چرا لباس تو خیس کردی من همش میشونم تو کسیف میکنی نمیزه یه سر لباس تو تن تمیز بمونه باشو برو عوضشون کن پاشو من پا نمیشم مامانم یه عالمه آشباسه سریا میریسه میگم چاقال بادو میترکیا بعد خونه ما کسیف میشه وقتی به ترکی مامانم میگه ای ای, ای پری شور سریا هیچی نمیگه آخه اینجا خونه ای ماست تا شیشتو کساش میخوره سریا یهومی ترکه بد خونمو پر میشه از نخود و لوبیا برشتو با و سبزی همهش هم له شده بد موانم پا میشه با جاروخاکنداز سریا رو که ترکیده از رو زمین جمع میکنه میرزه تو سطل آشغال هی بهش میگه خاک بر سرت سریا خاک تو سرت سریا من قاه قاه میخندم مامانم نگاه میکنه، اخم میکنه میگه به چی میخندی بچه؟ قضا تو بخور. سریو تونتوناش میخوره. کاش امروز عصر نشه. کاش یه دفعه شب بشه بخوابیم. اما امروز خیلی زود عصر میشه. اومده خونه ما. سریو از بس آش خورده نتونسته بره مرده. حالا عصر شده. شربت آبلیمو یخ نزده شربت آبلیمو بستنی نشده. شربت آبلیمو که بستنی نمیشه. شربت آبلیمو رو خوردم. سلطان خانم میخواد بیا به مامانم بگه سلطان خانم الان میاد شربت آبلیمو و بستنی سلطان خانم چطورش شربت بستنی ابلیمو بو یخ میکنم من هی می دوام میرم دستشویی تا شلوارمو خیس نکنم دستام یخ میکنن مامانم هی نگاه میکنه مامانم میگه پری مامان بیا ببینم چرا هی میری دستشویی من هی میرم دستشویی مامان آب زیاد خوردم آب زیاد نخوردم که آب هی زیاد نمیخورم مامانم میگه برو سریارو بیدار کن بستنیارو در بیارین از جایخی بخورین وای میگم اونا که بستنی نبودن شربت آبلیمو بودن مامانم میگه خب الان یخ زده شده بستنی برو بردار زیر آب بگه تا دربیان شربت آبلیمو بستنی نمیشه که می میرم تو دست مامانم داد میزنه یتیم مونده خوردیشون سرایه مامانش هنوز نرفتن سلطان خانوم نیومده من دارم یه عالم گیلاس میچینم مامانم میخواد مربا درست کنه من بالای درخت مونم. مثل یه خوک کچولو سرخانوم میگه مثل گربه میپره بالای درخت بعد هر هر میخنده منو میگه اما من یه خوک کوچولو یه صورتیم نه یه گربه بلند از اون بالا داد میزنم من یه خوک کچولو هم میگه خوک پرستارت سریا میگه خوکا نمیتونم از درخت برن بالا میگم ولی من میتونم سرالیا میگه پس تو بچه گربی اما من یه خوک کچولوی صورتیم خوشت سرم سرالیا مامانش رفتن من مریض شدم من دارم میمیرم دلم درد میکنه تو دلم شلوک پلوخ شده یه عالم سروسدو از تو شکمم میاد من میترسم میترسم یه عالم جونه تو شکمم باشه اونا تو دلم هی وولی میخورن من هی عق میزنم تنم داقه هی مامانم پامو توی تشت قرمز گذاشته هی hey, آب یخ میریزه رو پام من هی hey, یخ میزنم دوباره کرمم میشه مامانم میگه الهی بمیرم چرا به حرفم گوش نکردی مامان زور گفتم لباستو تو عوض کن نکردی شربت آب آدمو مریض نمی کنه که من یه آلم گیراس کرمو خوردم اون کرما الان تو شکمم هم دارن وول میخورن من هی hey, اق میزنم سرم رو میکنم تو گردنم از اونجا راست میرم تو شیکمم وای اینجا پر از چک و جونوره من میترسم داد میزنم هی hey, با شمام با شما کرمای هم ساکت باشید ورجه ورجهووجه نکنید میخوام بخوابم بعد اونا ساکت میشن اونا با اخم به من نگاه میکنن من سرمو از گردنم میارم بیرون اونا دوباره شروع میکنن به سروصدا کردن اونا قاه قاه به من میخندن میگم مامان این کرما رو بکش من میترسم مامان پیف باف داریم مامانم میگه یا همام زمان این بچه چی میگه خودت رحم کن زمان بعد من میبینم امام زمان میاد با یه پیف باف میخواد کرمای دلم رو بکشه مامانم من آبرده تو حیات کنار شیر آب من هی اوق میزنم من یه دفعه هرچی تو شیکممه میارم بالا همه کرما رو همه گیلاس رو همه نقلوبی ها رو رشته ها رو, سبزی ها رو... همهشون با سر و صدای زیاد از دهنم میان بیرون چقدر شلوک میکنن بعد من میبینم خانم سمابوتی و سرعی و سلطان خانم وایستادن دارن قه قه به من میخندن یخ میکنم من میافتم رو زمین مامانم منو آبرده تو اتاق حالا فقط سردمه دندونا صدا میدن از بس میخورن بهم مامانم از تو انبری لاف میاره میکشه رو من من اینه یه پر شدم خیلی سبک شدم فکر کنم دارم میخندم مامانم گریه میکنه هی میرم بالا میام پایین دوباره میرم بالا میرم تا لامپ اتاق بعد تو هوا غل میخورم دور اتاق میچرخم کیف میکنم اما نزدیک از پنجره بیفتم بیرون داد میزنم مامان منو بگیر نظر بیفتم. مامانم میگه یو حضرت عباس چیکار کنم نصف شبی؟ پری مامان چی میگی آخه از کجا نیفتی مامان بعد من میبینم حضرت عباس میاد لو که میذاره رو دل من نمیذاره دیگه بلنشم من میخوابم محسن، اومده دامه درمون. دمه در راه رومون واش داده. من تو راه رو دارم چای شیرین با میخورم من نونا رو خورد میکنم تو چای شیرینم. خیلی دوست دارم. محسن صورتش مثل بستنی میمونه من دوست دارم صورت محسن رو لیست بزنم. مامانم اگه بفهمه. محسن میگه بیا با علیرضا بریم پارک. علیرضا داداش محسن. علیرضا خیلی قدش بلنده. دستش خیلی بزرگه. من بزرگ بشم با علیرضا عروسی میکنم. وقتی با هم عروسی کنیم علیرضا منو با دستایی بزرگیش بغل میکنه میبره بغ وش منو هی بغل میکنه میبره شهر بازی هی منو میذاره رو کف پاهاش بعد پاهاشو بلند میکنه من میرم هوا قاه قاه میخندم اسم بچمونو میذارم گیلاس اگه کسی بخنده بهش یا بگه خاک تو سره تف میکنم روش دایجانم همیشه منو میذاره رو کف پاهاش اونجوری میکنه ولی فرشادو نه. آخه فرشاد خیلی کوچولوه. هنوز نمیتونه حرف بزنه. فرشاد پسردائیمه. دست و پاهاشم یه جوریه کجو کلست. مانم یه مریضه. سندائیم همش سرش داد میکشه. پریرو رو زدش فرشادو. از لایه درشون داشتم نگاه میکردم. گریه کرده بودم. من به مومنم گفته بودم بعدا من منو دعوا کرده بود گفته بود اگه یه بار دیگه خبرچینی کنی قاشق دق میذارم رو زبونت بعدم میبرمت میندازم زیر زمین درو در قفل میکنم دیگه نتونی بیای بیرون زیرزمین پاپا بزرگم اینا چین داره من دیگه به مومنم نگفته بودم خونه زندایی مینا تو خونه بابا بزرگمه تو طبقه اول من با مامانم همش میریم اونجا با فرشت بازی میکنم. خونشو خیلی دوره از اینجا اون بر دنیا دروغ نمیگم به مامانم میگم مامان میذاری برم مامانم میگه بی خود لازم نکرده تازه کم چون گرفتی یه به هزیون میگفتی چه زود یادش رفته خانوم میگم مامانم رو خدا برم تو رو خدا بزار. مامان تو قرآن بزار برم ممونم میگه بس کن بچه انقدر خدا رو قسم نخور خدا میباره تو جهنم انقر که من ازیاد میکنی انقر منو هرسد دختر خدا خیلی بزرگه خیلی گنده است اون دراز کشته تو آسمون اون خیلی بزرگه لباسش هم سفیده اون دراز میکشه تو آسمون رو شنا میکنه همه آدما رو نگاه میکنه بعد دستش رو دراز میکنه من از تو حیاتمون با یه انگشتش بر میداره میبره اون دنیا توی زیر زمین میندازه منو توی بشکه که توش پر از آشغاله بعد زیر بشکر آتیش رو شم میکنه من میشم. من و محسن جلوی درشون وایستادی این تو بیاد. اون میاد. داریم میریم طرف پارک. دست محسن رو گرفتم. علیرضا تو کوچه دوستشون میبینه. وامیسته باشون حرف میزنه. اون هی میخواد ما رو ببره پارک. اما نمیبره که همش وامیسته با دوستش حرف میزنه. علیرضا میاد دست منو میگیره. ما رو میبره ته کوچه. ته کوچه یک آلمه ماشی میاد و میره. میگه. تو ماشینایی که از اینور بشمار، محسنم ماشینایی رو که از اونور ورمیان بشماره. هر کی بیشتر بشماره جایزش بستنیه. یهو می‌بینم علیرضا آب رفته، دست و پاش کوچیک میشن. علیرضا نصفش فرو میره تو زمین. من با علیرضا نمی کنم از ماشینا بدم میاد. اونا بچه‌ها رو زیر می‌کنن. سُلماز دوست من بود. وقتی مدرسه تازه باز شده بود، پارسال یه روز یه ماشین اونو زیر کرده بود. سلماز لح شده بود ماشین ها دیگه از علی پر بدم میاد از محسنم بدم میاد محسن ماشین های طرف منو رو باس خودش میشماره من بهش میگم ان علی ما رو نمیبره پارک محسن میگه بی مامونت میگه به من گفتی ان میگم خب تو هم به من بگو اون هم به من میگه زار شده گرممه. تو یه چوب یه آدم صورتی افتاده من آدم سه صورتی پرستو خیلی دوست دارم مامانم نمیخره برام هر وقت خداشم میخورم یا خورتش میدم یا وقتی میخوابم یادم میره درش بیارم بعد صبح که با میشم میبینم آدم چسبیده به همه جای صورتم اون وقت مامانم منو دعبا میکنه یه چوب از رو زمین برمیدارم آدم آدامسه وسط لجنو گیر کرده با چوبم نمیشه درش بیارم دستمو میکنم تو جوج محسن داره به من نگاه میکنه. محسن هیچی نمیگه. همش قیافهشو یه جوری میکنه. انگار داره خالش به هم میخوره. شیر حیاتمونو باعث میکنم. آدام سرعتیمو قشنگ میشونم تا تمیز بشه. میندازمش تو دهنم. مامانم خونه نیست. رفته در منگاه. با مامان بزرگم رفته. مامان بزرگم همیشه مریضه. دل مامانم بازم درد میکرده امروز. هم خودشو برد دکتر هم مامان بزرگمو. محسن منو دیده که از جوب آدم در درو بردم میگم محسن انجو خوش میخوره برات بیارم نه مو تو توت خوشک کش میخوری محسن هیچی نمیخوره تو دلم میگم محسن کوفت میخوره برات بیارم بعد یه موش کوفت از یه جای خونمون پیدا میکنم به زور میریزم تو دهن محسن محسن بیچاره کوفتش میشه هی hey, سرفه میکنه هی hey, میگه کوفتم شد کوفتم شد قه قه میخندیدم